فَمَن خَافَ مِن مُّوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلِحْ بَيْنَهُم فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ اللَّهَ غَفُورٌ الرحیم. ولی هرکه بیم داشته باشد از وصیت کننده‌ای انحرافی یا گناهی را در حق وارسان و به اصلاح بپردازد میانشان، پس نیست گناهی بر او، همانا الله آمرزنده مهربان است، یا ایوها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام كما كتب کتب علالذین من قبلكم لعلكم تتقون ای کسانی که ایمان آورده اید نوشته شده بر شما روزه چنان که نوشته شده بود بر کسانی که پیش از شما بودند باشد که شما پرهیزگاری کنید ایاما معدودات فمن کان منکم مریضا او على سفر فعدة من ایام اخر و الذين الذین یطیقونه فدیتون طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير الله وان تصوم خير لكم ان كنتم تعلمون روزهای معین و مشخص و هر که باشد از شما بیمار یا در سفر پس روزه بگیرد به تعداد آن از روزهای دیگر و بر کسانی که به دشواری تاب میآورند آن را جایگزینی است که آن خوراک یک بینواست و کسی که به دلخواه کند کار خوبی را پس آن بهتر است برای او و اینکه که روزه بگیرید بهتر است برای شما اگر می دانستید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 ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريدون لی توپ میول عدلیتون کمبر الله علىهدكم ولعلكم تش ماه رمزان ماهی است که فرو فرستاده شده است در آن قرآن که هدایتی است برای مردمان و نشانه هایی روشن است از هدایت و جدا کننده حق از باطل پس کسی که در یابد از شما این ماه را پس باید روزه گیرد آن را و هر که باشد بیمار یا در سفر پس روزه بگیرد به تعداد آن از روزهای دیگر میخواهد الله برایتان آسانی را و نمیخواهد برایتان دشواری را و تا کامل کنید تعداد روزه را و تا به بزرگی یاد کنید الله را به پاس آن که هدایت کرد شما را و باشد که شما سپاس بگذارید و اذا سألك عبادی عنی فا اینی قریب اجیب دعوت الدعی اذا دعانی فلیستجیبونی و اليؤمنون بی لعلهم یرشدون و هنگامی که بپرسند از تو بندگانم در من، پس همانا من نزدیکم، پاسخ میدهم درخواست دعا کننده را هرگاه بخواند مرا، پس باید بپذیرند دعوت مرا و باید ایمان آورند به من، باشد که آنان راه درست پویند.